بسم الله الرحمن الرحیم و از دعایی علی السلام به اصطعاز و تمنن مکار و سید اخلاق رمضان افعال و از دعای امام که سلام برمباد است در پناه جستن به خدا از ناخوش آدمی ها و اخلاق برد و چه دارهای ناپسند اللهم اینی عوض که من حیجان حرس به صورت و غلبت لحسد به زرف السبر به قلت لفتناعه و شکواست لخولگ به خواه شهده و ملکت داده پناه میبرم از برنگیخت شدن حرس به شدت خشم به چیرگی حسد ف شجیبایی و کاستی قناعت و بد خلقت و زیاد رفیق و غلبه اسبیت و مطابقت الحبا و مخالفت خدا و سنت القتل و تحویل القلفان و ایثار على الحق و الإصرار على المعصم واستسبار مأسیه و استکبار تاعت و پیروی و حوض و مخالفت و دستکاری و خواب قفلت و انجام دادن کار با و برتری دادن باطل برحق و پافشاری بر گناه و کوچک شمردن نافرمانی و بزرگ شمردن طاعت و بندگی بسم الله الرحمن الرحيم و بحين استعين و هو خير و مغفر و مائن صلى الله على أشرف خلقه و مبلغ حبيب قلوبنا و طبيب نفسنا و محمد صلى الله عليه وسلم على و و رحمت الله علی العلماء العاملی راسی ما امامنا و قائدنا کتاب سیفی سجادی کتاب دعاست از جنگل عبرات هزارات محسومی و دسته مهمی از عبارات اون بزرگاران مجموعه های اتقه هست. این کتاب یکی از متنهای دعا برای نیازها و درخواستهای ماست که به ما یاد میدن حضرت مصومی چه چیزی رو نیاز داریم و چگونه نیازهامون رو؟ از خدای متعال طلب کنیم. این موضوع در قرآن هم زیاد پیش میاد. آیاتی است که مربوط به دعاست. ربنا تنا فیت دنیا حسنه و فیل اخرته حسنه و قنا عذاب النار. ربنا لا تخرجنا من بعد هدایتنا و هبلنا ملل دون کرمه. نکنت الوحب و دعاهای از این دست که در قرآن تعدادش کم نیست. این نوع عدیه، این نوع بیان در کتاب و سنت مربوط به تشریعیات میشه. نعمت های که خدا خلق کرده چه ما درخواست کنیم از درخواست نکنیم مخلوق خداست قبل از اینکه ما توجه داشته باشیم یا همچین نیازهای رو لازم داریم خدا خلق کرده بستر این عالم رو طوری پراهم کرد که وقتی ما پاپ بر عرصه وجود میداریم بتونیم به خوبی زندگی رو دنبال کنیم و سپری کنیم اما مسائل تشریعی رو منوط به اختیار خودمون کرده اختیار داده میگه من به شما هم توان دادم هم عقل دادم که بتونید تشخیص بدید در کنار خواسته هایی که دارید نیاز که دارید چجونی عمل کنید و مسیری از چه؟, چه طریق نیازهاتون رو مرتفع کنید. منتها راه رفع نیازها رو هم من گفتم این هم به عنوان یه راه حل میتونید راه حلی رو که من انتخاب کردم و من صلاح میدونم مقدورتون هست و باید شما هست از طریقی که من میگم نیازاتون رو کمبودهاتون رو و نقصهایی که دارید برطرف کنید این رو در قالب دعا پرموینش کرده در قالب دعا هم نیازهای ظاهری رو مطرح کرده خدای متعال و به دنبال وجود باری حضرات معصومین علیهم السلام در قالب عطلیه بیان کردند. هم مسائلی بود که ما نیاز داریم و نمیدانیم احتیاجاتی رو داریم که بهش توجه نداریم اونها ها در قالب عطلیه متوجه کردن، متذکر کردن مارا که این هم نیازتونه این جزء لطف خودم متعاله گوشتت کرده که این هم لازمی زندگی مادی یا معنوی شماست ترین متن از بیان این نوع نیازها و چگونگی رفع این نیازها در این کتاب شریف مبارکی سعیفی صدی و دیگه بیان شده. دعا کردن خواستنه. دعا کردن کار خوبی نیست برد. کار واجبی است. اینکه واجبه چون خدا خودش پرمونده. پرمونده که ادعونی استجب لکن. لازم هست ادعونی فعل امره. دعا واجبه مثل نماز خوندن, مثل روز گرفتن که حکم الهی هست دعا رو هم واجب کرده ما بهش توجه نداریم فکر میکنیم مثلا خوب دعا هم بکنیم مثلا زندگیمون من کنار کارهای که داریم ای بوشه ایدم بذاریم برای درخواست از خدا متعال خدا باید دعا کنید و من هم سنتم این هست که اجابت کنن منطقه شرط اجابت دعاه فرمایش کرده که پاکیه خلاصی از آلودگی هاست اگر انسان به استرال بیفته خود به خود دعا میکنه اما پذیرش منوط به پاکی هست هد پاکیش هم نیست که انسان به حرج بیفته خیلی به از رو بیفته همین که کارهایی رو کرده که مورد پسند نبوده مورد رضای خدا نبوده مخالفت پرمان به حساب میامده همین که پشیمان میشه از اون کارها خدا پرمان کافی ندامت اقل توبه ندامته همین که ندامت رو در دلش، در نیتش در ذهنش بیاره، خدا ازش قبول میکنه و او رو به عنوان یه آدم پاکی حرفش رو گوش میده. دعاش رو به اجابت میده سونه. لذا شرط قبولی دعا توبه است. این هم نکته نکته بعد اینکه در دعاها شرط دیگه هم هست شرطش این هستش که شرط دومش اینه که راه حل برای رفع نیازها پیش پا گذاشته نشده باشه وقتی راه حل رو در قرآن بیان شده در عبارات حضرات منصومین احادیث بیان شده برای رفع نیازتون چه بکنید بعد همون رو عمل کنید این لطف خدا کرده که ما رو خلق کرده محیط پینامونمونم خودش خلق کرده این عالم رو و متناسب با سازه خودش عمل ارائه کرده این دسترالعمل لطف بزرگیست یکر اگه توی انسان با همه خلقت خاصی که داشتی چون من خلقیت کردم رو مخوای برطرف کنی این دسترال عمل رو دنبال کن ایک از کتاب که دستورالعمل عمل واضح هست و از متنای هستش که بعد از بیان عیم علیه بزرگان از علمای ما که شاگرد مکتب احلویت هستن و نشستن و متن رو در طول تاریخ اسلام نو به نو برای هر زمان شرط نوشتن اینجور متنی و کتابی هی بودن و زنده بودن اون عالم هست بحث رساله های عملی است. رساله های عملی دستور عمل زندگی کردنه اونتا یه نقصی داره نقصش این هست که فقط دستور عمل فردی رو در این های عملیه بیان کردن هضرات فقها مراجع بزرگترها ما که ما قدردانی از ونها رو با عمل به این متنا باید نشون بدیم مسائل اجتماعی رو کمتر بیان کردند احکام اخلاقی رو بیان نکردند احکام اعتقادی رو بیان نکردند مدل در اعتقادات درسته باید عقید من باشیم یعنی عقد بین عقل و دلمون و قلبمون نسبت به مسائلی پیدا کنیم میگن خب این مربوط به عقلت میشه مربوط به دلت میشه ولی اونا باید بیان کنن چه چی چیزایی رو باید ما بهش اعتقاد داشته باشیم بهش باور داشته باشیم راه باورمندی ما رو و اعتقادات ما رو در حساله ها باید بنویسن. احکام اخلاقی را همینطور چه مواردی حرام از جهت اخلاقی چه مواردی واجب از جهت اخلاقی موارد مستحبهش، موارد مکروهش؟ اینها را رو باید بنویسن هم کاملا دارن یعنی عمرشونو گذاشتن هم علوم پایه فقه رو و هم خود فقه و کلید که اصول به عنوان که صاحب نظرن درشون. میتونن به راحتی در ارتباط با مسائل اخلاقی، مسائل اعتقادی به کار بگیرن و منابع رو استنباد کنن و حکم رو اعلام کنن. نقص دیگه ای که رساله ها داره احکام اجتماعی درش نیست. اینکه حضرت آقا الله میفرمایند که ما چل ساله دوم چلساله تمدن نوین اسلامی هست این رو بید فقها بشینند و احکام تمدن رو و نظام تمدنی اسلام رو از آیات و روایات استنباد کنند بیان رو متن تدوین بشه به عنوان قانون حقوقی مشخص کنند که تمدن که زیرساخت های مثلا مهم می داره. اول زیرساخت که ده تا هست اونها رو باید بیشینند و همه رو تدوین کنند این توان در وجود که های ما هست منتحاد چون ازشون نخواستند فقط مسائل فقهی رو سوال کردن همون مسائل رو نوشتن و تحویل دادن اگر از آیات ازام مرج تقلید سوالی اخلاقی بکنن که احکام اخلاقی ما رو بسطو کنن و بپرسن جواب میدن راکارها رو جواب میدن مسائل اخلاقی رو اگر بپرسن جواب میدن مسائل احکام نظام رو، نظام اجتماعی، نظام حاکمیتی رو مطرح کنن به خوبی همش رو توضیح میدن منتها یه نکته اینجا خیلی مهمه اول اینکه باید ما درخواست کنیم از اینها. دوم اینکه راه اجتهاد مسائل غیر عبادی فردی از این مسیر اجاعتاد عبادی حاصل نمیشه این رو بوقه ها به ما یاد دادن. ما به عنوان مثلا بچه طلب ها خدمتی این عازم وقتی زانو میزنیم راهش رو به خوبی ترسیم کردند که مسائل اجتماعی رو، مسائل اخلاقی رو مسائل اعتقادی رو، مسائل حاکمیتی و تمدن رو شکونه باید از کتاب و سنت استنباد کرد و اون اینجور هستش که از منظر حقوقی باید روایت رو نگاه کرد گاهی با افعل و لا تفعل و اینها احکام رو پرمویش کردن میگن اگر عمری وارد بشه نشانه وجوبه مثلا مثل همین کلمه عدق ادعو، عدقونی چون فعل امره داله لزوم میکنه که باید باید بخوانید یا گاهی عبارت با نهی میاد نهی میکنه خدای متعال در روایات میبینیم حضرات خیلی چیزا رو نهی کردن با فعل نهی عبوردن این دلالت لزوم میداره بر عمل نکردن الزاما باید عمل نکنیم میگن حرامه اما در باب مسائل اجتماعی در رابطه با مسائل حاکمیتی مباعث حقوقی که در بیان ائمه علیهم السلام و معصومین از پیانبر تا آخرین از معصومین بزرگوار صادر شده باید بیانات رو دقت کرد مثلاً یه مثال بزنم ما احکام خمسه داریم واجب، حرام، مستحب، مکروب و موباه موباه اون کارهایی هستش که میگه من حکمی ندارم براش خدای متعال به ظاهر میگه من حکمی ندارم اما وقتی میخوای عمل کنی مشورت میده ده تو موباهات مثلا میگه من میخوام این خونه رو بخرم به خرم میانم دوای پولیشی ذری بخرم. دوی بخر. اگه پولیشی نداری خب مثلا کوچیک ترش بخرم. نه پولش هست. مانعی نیست. نه امری هست به خریدن، نه نهی نه هست از، نه خریدن نیست. ولی مراقب باش. در شانت بخرم. به من خوف دارم یا ندارم، کی کش می نداره اینجا. من نمیتونم مباحث رو مانع بشم. یا الزامی روش بیارم، حالا نفیان یا اثباتم اما یه احکام داره خودم رو با هاتم دل باجناگ رو نسوزونی، مثلا به جون هم نندازی دیگران رو، اطرافیان رو، یا چی رفته خریده میگه خب، حالا این خونره که بخریم، وقت ماشینی تم باید اونچنان باشه لباساتم دیگه باید ماکلار باشه، چی باشه، همچنان یه کار مباه انجام میدی اما یه سلسله مسائلی رو برای خودت و اتراپیانت پیش میاری می یه حقهایی به گردنت هست در مباهات درست خود عمل مباهه ولی به شرط اینکه پیامد نداشته باشه میگه اگه پیامد داشتی، میگه پیامد داشت رو اگه خواستی من راه میکنم چیه پیامت ها چجوری بیان می کنیم با بیان حقوق حق تو بر خودت دقت کن ببین چه حقی بر خودت داری خود انسان روح انسانه خیشتن خیش میگن نسبت به اعمالی که انجام میدی بدان که روحت متاثر میشه شاید من برات حکمی به ظاهر ندارم حکمه واجب یا حرامی، مستحب یا مکلوهی اما حق خودت رو رعایت کن کاری نکن که منکدر بشی روحت آزرده بشه، چروکیده بشه کاری کن که روحت پرورش پیدا کنه یکی طوری عمل کن چون روح متاثر میشه از افعال ما افعال خوب یا بد ما افعال عادی ما ی غذای مثلا لذیذ می‌خورین با یه که حالا لذتی نداره روح متأثر میشه روح ما فرمانده جسم و روان ماست اگر هواش داشته باشیم قوی میشه اگر هواش نداشته باشیم ضعیف میشه وقتی ضعیف میشه مغلوب میل میشه هر میلمون بگه اون به جسم دستور میده جسم به همون سرم حرکت میکنیم اگر هواشو داشته باشیم تغریتش کنین دیر اومندش کنین او به میل دستور میده که چیکار کن پس ببینید نسبت به خودمون ما مسئولیت داریم اینکه که بگیم چی شد که اینجوری شد اینجور نیست که همینطوره اتقاقی چیزی پیش اومده باشه روح پرمانده بزنه اگر هواشو نداشته باشیم میل هرچی میخواد طلب میکنه روح دستور میده به جسم به همون سهم ترکر روح رو هوا داشته باشی در بیانات هزارات من اسرومین کارهایی رو که برای تقویت روح مفید هست لازم هست بیان کردن خب حق ما نسبت به خودمون یه حقوق ما نسبت به هم نوعمون اطرافیان تو کوچه و بازار، برخورد داریم با یه نگاه، با یه لبخند با یه سلام، با یه مثلا تحویل گرفتن یا خدای با یه بد برخوردی میتونیم رو دیگران اصل خوب یا اصل بد بگذاریم نسبت به هم نوع هم ما یه حقوقی داریم که در روایات بیان کردن که اگر ما او حق رو و هو رو نسبت به هم نوع عمل کنیم نتیجه میگیریم اگر به عکس عمل کنیم مقبون اونها میشی مثلا یا نسبت به محیط من. حالا چه محیط طبیعی که محیط جانوری و پوشش گیاهی و انهاست چه محیط انسانی پوچه و بازار تو شهر داریم میشرخیم یه محیطی مارو اهاطه کرده دیگه نسبت به محیطمون وظایفی داریم این وظایف رو در متنای حقوقی دین مطرح کردن که نسبت به محیط چه محیط انسانی چه محیط طبیعی که شامل مثلا پوشش جانوری پوشش گیاهی میشه ما چه مسئولیت‌هایی داریم در ارتباط با ماورا ما چه بخوایم چه نخوایم چه ببینیم و حس کنیم چه حس نکنیم یه ماورایی موجوده خیال نیست یا تصور صرف نیست اینکه که وجود دارن، اینکه که وجود دارن. ده گروه از ملایکی زمینی هستند مشغول کارن. ما توجه نداریم چون نمیبینیم یا صدایی ازشون نمیشنویم فکر میکنیم مثلا شاید یک چیز دینی همطور یه حرف دینی دین گفته که وجود ملایکی یا عجلنه هست خب دین گفته ما هم تاپوت داریم. نه. حقیقتا هستن. از جمله موضوعات ماورای خود وجود حضرت حق خدای متعال. ما نسبت به ماورای خودمون یه حقوق بگردنمون هست. این حقوق رو در ابرازشون حضرت محسومی فرموهش کردن. تقریبا درصد گرفتن که سیز درصد از متون عملی در کتاب و سنت به کار گرفته شده مثلا بیش از 85 درصد آک مونده دست نخورده از آیات و روایات موجود عازمی مثل مرحوم صدوگ، مرحوم شیخ تورسی، مرحوم کولگمی اینا را زحمت کشیدن از کتاب اقدمین ترتیب دادن، تبریک کردن و با بندی کردن، مکتوب کردن در دست رس ماست مطمئن مونده. این دو مسائل رو باید از متنای حقوقی بزرگترها ازشون بخوایم هم و تحویل بدن به ما اینجور نیستش که مثلا برای نیازهامون به غرب و شرق و ما عبارات مختلفی داریم، در آیات قرآن در روایات که هر آنچه لازمه زیست انسان بر روی زمین هست رو ما بیان کردیم. خیلی حرف بزرگی. هر بزرگیه. هرچی نیاز داریم در هر زمان و هر مکانی روی این زمین، خدای مطمئن بیان کرد. این حرف خیلی بزرگ خیلی گونده است. اما هست در قرآن و کلمات اهل بیت، سیره اهل بیت، وجود داره هرانچه لازمه زندگی مناسب و سعادتمندان هست. در قرآن و روایات بیان کردن. این یه نکته دیگه نکته مهم و موضوع بحث ما این هستش که با وجود بیان قرآن و حضرات معصومین گاهی راه رو اما ما موندیم مثلا اینکه حسادت اصحادت میبرزیم تکبر میبرزیم قیفلت میکنیم بلکه نه تقافل میکنیم خودمونو به کفیرت میزنیم و مرتکب چیزایی میشیم که نه خدا راضی هست نه اغلال راضیم نه قانون راضیه و از همه مهمترین که خودمون به خودمون سرر میزنیم به رضایت نداریم من کارهایی میکنیم که بعدا پشیمان میشیم وقتی هم پرسه میگیم نمیدونم چی شد دلمون میخواست دل دیگه مثلا یه, یه چیزی گفتیم که بررامهی مثلا به اختیار خودمون پیش آوردیم که مثلا تسلیم دلیم تسلیم اون هستیم با وجود بیان دین با وجود راهکارهایی که دین فراهمش کرده که راه برون رفته از مشکلاتمون چگونه هست باز توش میمونیم دعا اینجا کارسازه دعا اینجا راه خوش هست. لذا امام سلام سلامون علیه چی در دعای هفتم که تو این شبها به طور ترجمه و خلاصه مطالب بیان شد. چی در دعای هشتم که عزیزمون پرانهت کردن مقدارش رو تا آخر وقتی نگاه میکنین در دعای هشتم صحیفه سجادی چهل تا سفت رو امام علیه السلام برمیشموره از سپات، انسانی که ما مغلوبیم در مقابلش میگه خدای من پناه میبرم از این کارها کارهایی که انجام میدم به خودت خب یعنی چه پناه میبرم یعنی اینکه من درموندم آدتهای من میل من مانع از این هستش که خود زنی نکنم خلاف مسلحت خودم عمل نکنم می‌دونم که دارم خلاف می‌کنم ولی توان مقابله با میلم رو ندارم به تو پناه می‌برم خب می‌گه میل تو کنترل کنگی؟ نمیتونم. می‌خوام ولی نمیشه. هی هم خود منبری هم خود دیگران که پای منبرها نشستن گوش کردن می‌دانیم اما نمی‌تونیم عمل کنید میگه تقوا رو من متوجه شدم که تقوا یعنی زمینه گناه رو به دست خود نچیدن اینو من میدونم ولی میشینم متوجه که مقدمه گناه رو نچیدن به ظاهر راحت تر از گناه نکردنه اما تو اینش هم موندم اینجا باید کار کنه. خدا هم فرمود به خودمون مراجعه کن. همین رو هم از من بخواه. از من کمک بخواه. در واقع ما یه تقوا داریم، یه موانع تقوا داریم. اون موانع تقوا رو باز وقتی میان توضیح میدن میگیم خب اپورتونیو مثلا رأس و کل خطیه حب دنیا بایست میشه انسان رو که حداقل گوش به فرمان خدا بودن و به امر خدا رفتن هست اونو نمیتونیم گوش بدیم یه موانعی هست ریشه اون موانع، مثلا مثل حب کلان حب مال حب جاه و امثال این محبوب های هفکانه که رأسش دنیا هست حب دنیاست. خب این هم توضیح دادید، کلاس هم رفتیم و دیدیم میگه خوب سممم آزا، حالا چیکار کار میگه خوب بدون دیگه، دانستان کار رو درست نمی کنن توامند بشم، من توانمندی ندارم با اینکه میدانم خلاف میکنم میدونم دنیا و حب به دنیا، حب به دنیا، حب یعنی مل شدید میلی شدیدی به دنیا من رو میندازه به مکافات میندازه به مخالفت فرمان خدا اینو مثلا کارگاه دوبامه تقویر هم رفتن اما خوبم، نمره خوبی هم یه کارگاه هست دوستان زحمت میکشم آجایف فیضی، دوستان دیگاه اونه و دیگران استاد پنم. میگه این رو من درتشم کندم تو عمل موندم باید چی کار کنم؟ بگید در خونه خوزم بیا اینجا لنگه رو بنداز. خودش خلق کرده مثل پدر و مادری که بچی گریه میکنه میدونم بعدم رو میکنم نمیتونم نمیتونم پدره به مادره مادره به پدره میکنم خوبه آره رو دیگه. قومتش لنگه دیگه چی کنی؟ اگه بلیج کنیم که در به در میشه کوچه ها میشه و میبتده دست این و من بگیریمش که خیلی هزینه داره این همه خرج تحصیلش و خرد و خوراک و فوشاک و سخپه بالا سر و گرموهش رو همتونم سرمایش و این بندزادی ما سنش کم بود هیچده سالش بود. گفت اگه میشه از جیبه اینا رفتی استفاده کنیم. من سهربازی ندارم الان مشغول کارم اینها دو سال زرر میشه رو. گفتم یعنی میشه؟ آره من رفتم پرسیده. هم باشه. گفت اگه با کار رو میکنی گفتم آره. اونتها شرط من نبونم هم هستم چیزی از این حال پرده. یه دفعه می افته پای آدم و می بوسته مثلا این باشو باشو من تو رو خیلی خوشمزه بود الان دیگه خیلی خوشمزه نیست بود کسیش بلن بود بلند میشد من بیدار میکرد برای نمازشن با با به وقت بعد خودش میگرد میخوابید خوب شرطش چی بودم ازدواج من ایسو اس کو نه ها یک دو من تو میرفتم می ما بالاخره بالاخره استواش کرد و بعدم رفت مافیاش هم گرفت هی حدود یه سالی گذشته بود از اونجایی دیدم تو ایسو اس به ما داریش زد میگه که من غیر بودم گفتش که بابا چیه بلای پس ما اومدیم بومو شب میرم، قبض آب میاد راست میرم، قبض میرم، تلفون میاد ایمیل میرم، گاز <تصفيق> اون میرم، چی؟ این چه حکایتی؟ اونا فکر نمیکردم، اینجا تو بگذارم، میگیریم دیگه مافیاتمونو بگیریم وقتی بنده میاد، در خونه خدا و نابه میکنی که خدای من دستان بالاست میخوام نمیتونم اون یه قدمی که شما میگی بیا من ده قدم میام اون یه قدمه رو نمیتونم بیام لعن میزنم میگه از من بخواه من درست میکنم بعد. چرا درست میکنه چون رحیمه فقط مهربان نیست رحمان رحیمه صفتی ایست که تکرار کرده بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام الله و خدایی که بسیار مهربانه بخشند و مهربانه خیلی رسال نیست رحمان رحیم از یه ماده است رحیمه و گول زمخشلی که پدر لغت عرب هست مستشلی میگن زمخشلی پدر لغت عربه زمخشلی فارسی، ایرانیه ها جالبه هم علمای حدیث هم اولمای رجال هم علمای لغت هم علمای ادبیت همهشون ایرانی هستند پیدر در مثلا نگاه اهل سنت ایرانی هستند برای برا همی تبرستان خودمون هستند گیلان و مزندگان و رو میگن اصلا ثبات ندارید که سیده عرب های متاسه میگن ایلم تولیدش در مصر هست چابهش در لبنان هست قرایتش در ایراق هست ایرانی ها چیزی ندارم چیزی ندارم و حال اینکه اصلا بیان اسلام بیان قرآن بیان احادیش به دست ایرانی چه چی مذهب سنی چه مذهب شیعه همه ایرانیان هم. علی کل حال این خیلی مهم هست که ما در خونه خدا لنگر بندازیم از کنیم و بگیم تو اون یه قدمشم خودت کمک موکون در این دعای هشتم حضرت اینطور به ما یاد میده که این مرحله رم از خدا بخواهید اگر میبینید پاتون لنگ میزنه ما دارید توان ندارید، مقدور نیست براتون، استعازه کنید. استعازه اعوذ بالله پناه ببرید از مکاره، از کارهای زیش، کارهای ناخوشایند، و سی الاخلاق و مظام الافعال از بد ها، و از بد عمل کردن ها، از بد ها، به خود خدا پناه ببرید. چرا در آخر دعا میفرماید به خاطر اینکه تو رحیمی فرمودید اللهم صل علی محمد و آله و اعذنی من كل به رحمتک همین این چه صفاتی که گفتم من توش موندم همین این صفات لازمی که باید ازش پرهیز کنم هم علمش دارم هم آگاهیش دارم هم به ظاهر شما توانیشو به امدادی بدهید من قلمی هوا اینقدر بر من زیاده که نمیتونم رضا حضرت فرمود که این نگاه من در همه این 40 صفت بدی که مرتکب میشم معمولا اومدم در خونه شما میگم اون یه قدم خودت بردار کل ذالکه به رحمتت همه به خاطر که خیلی مهربانی هم مهربان بر من هستی هم بر جمیع مؤمنین یا ارحمان راحمی ای کسی که مهربانترین مهربانانی این صفت رحمان رحیم به ما اجازه می‌ده میده که حتی در اولیات هم بریم در خونه خدا و از او تمنا <تصفيق> کنیم این جهاز که آدم باور میکنه که این روایت روایت درسته روایت قدسی هست شندید به موسی علی نوی نبا و علیه السلام خود من فراهم اج یا مسابقه بگو رو گفت نمکی از من بخواید این کنایه از اینه که شما نمیتونید توانتون زیاد ها میلتون شدیده نمیتونید در راستای مخالفت میلتون عمل کنید از من کمک بخواید از من کمک بخواید و امید داشته باشید مطمئن باشید که من کمک می کنم تو این ایام تو این دیادی و شب هایی که بسیار مبارک هست، ماه رمضان ماه رحمت الهی ماه خداست در کنار عبادت خودمون، در کنار روزه که داریم از خدا بخوایم در سجده های بعد از نمازمون، در اوقاتی که حال دعا داریم به خودمون دعا کنیم، دعایی به دیگران وظیفه رو انجام میدیم، راحته دعایی به دیگران راحته توجه نداریم که خودمون خیلی محتاج از دیگرانیم دعا کنیم این نکات و اصم امثال این نکات رو خدا ازانی کنه و ما رو نجات بده از میل و هوا و اون حب دنیا که رأس همه خطایا و مشکلات هست خدا رو اصلا میدیم به حق خودش به حق همه ملایکی مقربینش انبیا ازامش خاصی نبی خاتم و و ما اوصیای گرام اون بزرگوار به ما توپیو بده در مسیر بندگی خو و در مسیر حق قدم برداریم به حرکت صلوات بر محمد و آل محمد آه! الله محمد, الله محمد, آل محمد. این ایامان به که هم مزاحم دوستان بودیم هم خیلی به ما خوش گذشت شهر قزوین شهر خیر و برکت از قدیم هم اینجور بوده. ابن پارس قذرینی مقایش رو نوشته امد پیش ابن والی ری بود. شیعه بود. انسان خیلی عالم و چند کتاب خودش داره ابن عباد. محدود الان هست. امد کتاب لغتی داد به ابن عباد دیگاه که خودش این کاره بود. خوزه اونجا درسته در نکنه و تحویل نگره کنیم فارس بیزاری فکر گم و گفتیم مثلاً حالا همچین وزیزه ای رو نوشتیم اون رو موند که تو روغنه برگشت قذبین دو سال قذبین موند این مقایس رو نوشه مقایس رو لغه رو نوشه فیلی کتاب ارزنده او عبرد داد نگاه کرد خیلی خوشش اون بند هم سلیبش داد هم نگهش داشت درستگاه خودش هم معلمی بچه هاش که هم وقتی معمولیتش در ری تموم شد رفت مثلا بلاد مرکزی اسفحان اونجا ها رو بلایتش به اوتی رو با خودش برد برد اونجا بو تا هر دو اونجا رو پوت کردن قبلش هم در اسفحان ایبن فارس بلخوره قزمی قدمت زیادی داره و مؤمنینش از ایمانی ثبقه دارن بر خیلی از جاها خیلی مراقب بود وضعیت حسبناکی هست در کوچه و بازار چون قانون نیست نمیشه پای مردم گذاشت قانون نیست طرف میلش مگه هرچی هست همون دیگه خانومها تیپن دور از خیلی از مؤمنات و خانومهای مؤمنی که داریم نظر کانستی ندارن کمن مغرز باشن کمن بد باشن ذاتن نه ببینه کسی مانع نمیشه این که راحت باشیم اشترال خود کمک کنه قانونگزاره های ما مجری های ما به دنبال قانونگزاره قانون رو مطرح کنن کار تمومه خیلی نگران نباشیم اینکه مسلحت نبیبینن قانون رو سریع پیش برسن و اعلام کنن اینها، ها او حالا دیگه بزرگترها می که مسلحت چیه خدا انشالله خودش مرحمت کنه و از این عذاب ظاهری که داریم در گوش و کنار شهرها انشالله خلاصی پیدا کنیم باز هم صلاوات دیگر نه. از بادیم